یک روز عیسی در کنار دریاچه جنیسارت ایستاده بود و مردم به طرف او هجوم آورده بودند تا کلام خدا را از زبان او بشنوند. عیسی ملاحظه کرد که دو قایق در آنجا لنگر انداخته‌اند و ماهی گیران پیاده شده بودند تا تورهای خود را بشویند. عیسی سوار یکی از قایقها که متعلق به شمعون بود شد و از او تقاضا کرد که کمی از ساحل دور بشه و در حالی که در قایق نشسته بود به تعلیم مردم پرداخت. در پایان صحبت به شمعون گفت: به قسمت‌های امیق برو و تورها رو برای سید به آب بیانداز. شم اون جواب داد: ای استاد، ما تمام شب زحمت کشیدیم و اصلاً چیزی نگرفتیم. اما حالا که تو می فرمایی، من تورها را می‌اندازم. آنها چنین کردند و آنقدر ماهی سید کردند که نزدیک بود تورهایشان پاره شود. پس به همکاران خود که در قایق دیگر بودند اشاره کردند که به کمک آنها بیایند. ایشان آمدند و هر دو قایق را از ماهی پر کردند به طوری که نزدیک بود غرق بشن وقتی شمعون پتروس متوجه شد که چه اتفاقی افتاده، پیش عیسی زانو زد و عرض کرد: ای خداوند، از پیش من برو چون من خطاکارم. او و همه همکارانش از سیدی که شده بود، متحیر بودند. همکاران او یعقوب و یوحنا پسران زبدی نیز همان حال را داشتند. عیسی به شمعون فرمود: نترس. از این پس مردم را سید خواهی کرد. به محض اینکه قایقها رو به خشکی آوردند، همه چیز را رها کردند و به دنبال او رفتند. به کلاس دیگری از دانشکده ی کتاب مقدس خوش آمدید. در این جلسه هم به بررسی انجیل لوقا ادامه خواهیم داد. لوقا در انجیلش به ما میگه عیسی مردی بود که معموریتی داشت. معموریت او اعلام پیامش به کسانی بود که نیاز داشتند اون رو بشنوند. کسانی که عیسی قصد داشت پیامش رو به اونها بگه، به لحاظ روحانی افرادی فقیر بودند. اونها از اون نظر فقیر بودند که کور بودند، اسیر بودند، شکسته و کوبیده بودند. وقتی عیسی پیامش رو به کوران اعلام میکنه، او وعده میده که اونها خواهند دید. وقتی خطاب به اسیران پیامش رو اعلام میکنه، وعده میده اونها آزاد خواهند شد. وقتی خطاب به شکستگان و کوبیدگان پیامش رو میده، وعده میده که اونها شفا خواهند یافت. این رویکرد لوقا به خدمت و مأموریت عیسیای مسیحه در جلسه اول بررسی لوقا دیدیم که عیسی معموریتش رو در با باب چهار اعلام کرد او معموریتش رو در باب پنج ثابت کرد و اون رو در سرتاسر انجیل لغا به انجام رسوند این معموریت عیسی کلید لغا برای نگرش به زندگی و خدمات عیسی هست ضمن بررسی انجیل لوقا دیدگاه دیگری هم هست که دوست دارم از معموریت عیسی با شما در میون بذارم در سرتاسر انجیل ملاحظه می کنید که عیسی مراتبا دعوتی را از مردم و از کسانی مثل من و شما به عمل میاره که با او در اجرا و پیاده کردن ماموریتش همکاری کنیم. در انجیل لوقا عیسی به من و شما میگه که در اطراف شما همیشه کسانی هستند که به لحاظ روحانی کورند. کسانی که اسیر شکست دل و کوبیده هستند. زندگی های شما مرتبا با زندگی افراد فقیر روحانی در تعامل هست. بر اساس عهد جدید مسیح که روی زمین به مدت 33 سال در جسم بین ما زندگی کرد امروزه هم در کسانی که پیروان او هستند زندگی میکنه وقتی عیسی در جسم زندگی میکرد میخواست چیکار کنه بنا به گفته لوقا او میخواست که بیانیه ناصره رو اجرا کنه امروزه که ما بدن او هستیم عیسی میخواد چیکار کنه عهد جدید میگه باری شما جمعا بدن مسیح فردن فرد عضوی از اعضای بدن او هستی ما تنها بدنی هستیم که عیسی امروزه داره. امروزه که او خودش رو به واسطه من و شما ظاهر می‌کنه قصد داره چیکار کنه. من فکر می کنم جواب این کاملا واضحه. عیسی مسیح میخواد همون کار رو در من و شما و به وسیله من و شما انجام بده که وقتی در جسم بر روی زمین میکرد انجام میداد. وقتی انجیل لغا رو می خونید، ملاحظه کنید چطور عیسی مرتباً مردم رو به کار می گیره و اونها رو به چالش وا می‌داره که در خدمت او سهیم بشن و با او در انجام مأموریتش مشارکت کنند این همون کاریه که عیسی در باب پنجم انجیل لغا با پتروس میکنه. این اولین باری نیست که عیسی با پتروس ملاقات میکنه. در همون باب اول انجیل یوحنا در مورد اولین ملاقات بین عیسی و پتروس میخونیم. پتروس برادری به نام اندریاس داشت این اندریاس بود که پتروس رو آورد اون موقع اسم پتروس شمعون بود آندریاس او رو به عیسی معرفی کرد وقتی شمعون با عیسی ملاقات کرد عیسی به او لقبی داد عیسی گفت تو شمعون پسر یوحنا هستی اما کیفا یا صخره خوانده خواهی شد این نام مفهوم استقامت رو نشون میده اگه شمعون رو بشناسید خواهید دید که یکی از مشخصه های زندگی او بی ثباتی بود او با ثبات نبود اما فکر میکنم وقتی عیسی او رو با ثبات میخونه به مدت سه سال عیسی به شمعون صخره میگه در کتاب اعمال شمعون صخره یا پتروس هست گاهی این رو روی بچه هم امتحان کنید روی شوهر و زنتون امتحان کنید چون هر اسمی که به مردم بدید اونها مایل خواهند بود اونطوری زندگی کنند اگه به اونها بگید شما صفر هستید هیچ هستید احتمالا اونها همونطور زندگی خواهند کرد اما اگر برعکس این رو بگید اون رو بر روی اونها خواهید دید. این روی کرد ایسا در ملاقات با شمعون بود. روی عیسی در ملاقات با شمعون این بود. ایسا در متا چهار نوزده به شمعون میگه مرا پیروی کن و من تو را سیاد انسان خواهم کرد. احتمالا این همون واقعه در لغا پنج هست که در متا چهار نوزده برای ما گزارش شده. با این فرق که لغا این رو با جزیات بیشتری ذکر کرده. یک روز صبح عیسا برای جمع کثیری از مردم در ساحل دریای جلیل موعظه کرد. جمعیت اونقدر زیاد بودند که ایسا پشت به دریا و نزدیک آب ایستاده بود. اون روز وقتی ایسا برای اون جمعیت انبوه موعظه کرد، من فکر می کنم هدف او و روی سخن او با ماهیگیر بزرگی بود که مشغول شستن تورهاش بود. احتمالا او حوصله درست حسابی هم نداشت چون تمام شب رو تا سهر تور انداخته بود و هیچ چیزی سید نکرده بود. ایسا میدونست دونست که در عرض سه سال این مرد معزه بزرگی رو در روز پنتیکاس خواهد کرد و سه هزار نفر تبدیل خواهند شد. پتروس یک بار دیگه معزه خواهد کرد و پنج هزار نفر ایمان خواهند آورد. ایسا میدونه دونه که این مرد وقتی در جاده ها راه بره مردم بیماران، علیل ها، جزامی ها رو سر راه او قرار خواهند داد تا اینکه سایه او بر این بیماران بیفته و چون سایه او بیفته اونها شفا خواهند اونها یافت. میدونه که این ماهی گیره بزرگ بعد از سه سال این کارها رو انجام خواهد داد. ایسا اینو میدونه اما در این مرحله شمون حتی نمیتونه ماهی بگیره. حالا چطور ایسا مردی رو که حتی نمی تونه ماهی بگیره تبدیل به کسی خواهد کرد که سیاد انسان بشه. این نکته کلی در این گفتگو بین عیسی و شمون هست. ایسا سر صحبت رو با پتروس اینطور باز میکنه و از او میخواد اجازه به دست قایقش به عنوان سکوی خطابه استفاده کنه من فکر نمی کنم پتررس علاقه چندانی به این مسئله داشته اما با این حال میگه حتما بفرمایید و به شستن تورهاش ادامه میده عیسی سوار قایق شمعون میشه و به مردم تعلیم میده وقتی تعلیمش تموم میشه رو به می میکنه و می پرسه پطرس میای بریم ماهیگیری؟ گیری و من فکر نمی کنم در اون لحظه پطرس خیلی مشتاق ماهیگیری بوده باشه او تمام شب رو تور انداخته بود و چیزی آعدش نشده بود اما در این مرحله بائسا همراه میشه وقتی وارد آب میشن جایی که آبها میشه می خداوند میگه تورت رو برای ماهیگیری بنداز فکر میکنم کنم پتروس زیر لب غرغر هم میکرده و میگفته استاد تمام شب رو سعی کردیم ولی هیچی نگرفتیم ملاحظه کنید که او رو استاد خطاب میکنه من همیشه تجسم میکنم که در این لحظه حدود سی ثانیه سکوت حکم فرما بوده و چشمان خداوند به مدت 30 ثانیه با چشمان پتروس تلاقی میکنه بعد پتروس میگه با این حال چون تو میگویی تور را در آب خواهم انداخت خب تور با آب انداخته میشه و البته پر از ماهی میشه اونقدر از ماهی پر میشه که او مجبور میشه از دوستانش یعقوب و یوحنا و برادرشان دریاس کمک بگیره که همه اینها با هم در تعاونی محصولات دریایی زبدی شریک بودند ماهیگیری حرفه اونها بود و تمام زندگیشون از ماهیگیری تأمین میشد اون روز اونقدر ماهی گرفته بودند که این سید بزرگ نزدیک بود هر دو قایق رو غرق کنه وقتی این معجزه بزرگ اتفاق میفته واکنش پتروس رو ببینید پتروس به پاهای خداوند میفته و میگه از من دور شو ای خداوند زیرا من مردی گناهکارم چرا پتروس اینطور واکنش نشون میده ها تصور میکنند خداوند در موعظه به اون جمعیت گفته بود که همه ها گناهکارن احتمال دیگه اینه که عیسی سعی میکنه پتروس رو به خدمت بگیره که با او در اجرای بیانیه ناصره شریک بشه او سعی میکنه به پتروس بگه که حاضری با من شریک بشی تا کورها رو بینا کنیم اسیران از رو آزاد کنیم و شکستگان و کوبیدگان رو شفا بدیم میشه اولویتت رو از ماهیگیری برداری و بفهمی که این امکان هست که باقی عمرت رو بتونی سجاد انسان ها بشی به این دلیل وقتی پتروس میشنوه خداوند میخواد او رو به کار بگیره به او میگه از من دورش شو خداوند دا. تو آدم درستی انتخاب نکردی من حتی خواندن و نوشتن بلد نیستم من گاهی فوشم میدم و گاهی کنترلم رو از دست میدم و ناخداگاه عمل میکنم. از من دور شو من مردی گناهکارم. به درد تو نمیخورم. احتمالاً این چیزیه که وقتی پتروس به پای عیسی میفته به او میگه. عیسی میخواد این مردی رو به خدمت بگیره که فقط یک چیز توی فکرش هست. سید ماهی. و میخواد این مرد رو به جایی برسونه که فقط این فکر توی ذهنش بمونه. سید انسان ها. عیسی میخواد این مرد رو که حتی نمیتونه ماهی بگیره انتخاب کنه و به او یاد بده چطور میتونه انسانها رو سید کنه. برای اینکه این کارو بکنه، خداوند باید اول به او اینو یاد بده که پتروس، این نیستی که توی این قایق ماهیگیری میکنی. من ماهیگیرم، اما من در قایق با تو هستم. من با تو هستم. وقتی پتروس ایسا رو استاد خطاب میکنه، او واقعا این سوال رو مطرح میکنه. ماهیگیر توی این قایق کیه؟ البته خداوند وقتی میگه و نشون میده که کجا تورهاش رو بندازه جواب اینو میده که پتروس من ماهیگیره توی این قایق هستم نه تو اما من در این قایق با تو هستم دومین چیزی که خداوند سعی میکنه به پتروس یاد بده این هست پتروس تو نمیتونی ماهی بگیری اما من میتونم و من توی قایق تو هستم من با تو هستم پتروس تو حتی شاید نخوای که ماهی بگیری اما من میخوام و من در این قایق با تو هستم وقتی قایق پر از ماهی شد وقتی هر دو قایق نزدیک بود که غرق بشه، خداوند لازم نبود این رو بگه چون کاملا آشکار بود. اگر پتروس قرار یاد بگیره که انسانها رو سید کنه، او باید این درسها رو یاد بگیره. یادتونه که موسا هم مجبور بود همین این چیزها رو یاد بگیره. تو منجی نیستی، من منجی هستم. چون من با تو هستم. تو نمیتونی کسی رو نجات بدی، اما من میتونم و من با تو هستم. تو نمیخوای کسی رو نجات بدی. اما من میخوام و من با تو هستم، تو اون مردم رو نجات ندادی، من نجات دادم، چون من با تو بودم. اینجا باز همون چیز بین عیسی و پتروس اتفاق میفته. اگه قرار پتروس سیاد انسان ها بشه، باید بدونه که چه کسی سیاد هست. وقتی که نوبت سید انسان ها برسه، چه کسی سیاد هست. آیا میدونستید که وقتی قصد دارید کسی رو به عیسی مسیح هدایت کنید، بدون روح القدس تلاش شما بیهوده هست؟ عیسی گفت برای انسان این غیر ما برای خدا نه نه تنها مشکله بلکه غیر ممکنه روح القدس مبشر هست و عیسی مسیح سیاد تنها امیدی که شما برای سید انسان ها دارید این واقعیت که او در قایق شماست شما نمیتونید انسان ها رو سید کنید اما او میتونه و او با شماست این خواستن شما برای جانها نیست که اهمیت داره به خاطر این نیست که شما علاقمندید و یا اینطور میخواید این خواستن او هست که اهمیت داره. خواستن او هرگز متزلزل نمیشه اما مال من و شما میشه. وقتی معجزه رخ میده و کسی توسط شما ایمان میاره، هرگز این رو فراموش نکنید. شما این کارو نکردید. عیسی این کارو کرد چون او با شما بود. این داستان زیبا بین پتروس و عیسی و این مواجهه بین اونها چیزهای زیادی رو به تصویر میکشه. این مواجهه این واقعیت رو به تصویر میکشه که مسیح قیام کرده در ما ساکن هست. ما این رو می بینیم که با سوار شدن عیسی به قایق پتروس به تصویر کشیده شده. ایسا در قایق پتروس تصویری از ساکن شدن روح القدس در ما هست. اول او در قایق هست. مسئله بعدی اینه. پتروس آیا کنترل این قایق دست منه؟ پس بیا بریم ماهیگیری. عیسی شروع می‌کنه به دستور دادن که کجا برن؟ وقتی ایسا رو در قلبتون می وقتی در رو باز می‌کنید و او رو به درون دعوت می‌کنید، مسئله بعدی اینه که با او چیکار خواهید کرد. آیا او کنترل خواهد داشت؟ پر شدن از روح یعنی کنترل شدن توسط روح. وقتی تمام کنترل رو به عیسی سپارید، اون وقت پر از روح میشید. این هم در این داستان به تصویر کشیده شده. وقتی قایق پتروس پر از ماهی میشه، این چیزی رو به تصویر می‌کشه که بهش برکت یافتن از روح القدس شما میتونید در سطوح زیادی با عیسی مسیح زندگی کنید. شما میتونید با مسیح زندگی کنید اونجا که تاکید بر این هست که آیا من تمامی چیزهایی رو که باید توسط مسیح تجربه کنم تجربه میکنم؟ وقتی قایق پتروس پر از ماهی شد، شما این تصویر رو میبینید. زندگی کردن با مسیح باید فرق زیادی در زندگیتون ایجاد کنه و بعد برکت از طریق شما به دیگران جاری میشه. اما نظریه دیگری هم در این داستان وجود داره. در ابتدای داستان میبینید که پتروس از عیسی میخواد وارد زندگیش بشه و او عیسی رو وارد نقشه های خودش میکنه تا حالا شنیدید که مردم چنین چیزی بگن؟ من تصمیم گرفتم عیسی رو وارد نقشه هام بکنم. در ابتدا این بسیار داهیانه به نظر میرسه اما اگه یه لحظه بهش فکر کنید، واقعا مسئله این نیست. مسئله این نیست که آیا شما عیسی رو وارد زندگیتون کردید؟ آیا او بخشی از زندگی شما هست؟ آیا او بخشی از های شما هست یا نه مسئله اینه آیا شما بخشی از زندگی او هستید و آیا او شما رو وارد های خودش کرده ببینید پتروس وقتی قایقش پر از ماهی میشه اینجا شروع میکنه در سطحی با مسیح زندگی کردن اینجا شروع میکنه در سطحی با مسیح زندگی میکنه اما بعد وقتی عیسی میگه انسانها رو سید کن و ماهی سید نکن پتروس بخشی از چیزی میشه که عیسی در ذهن داره و عیسی پتروس رو وارد نقشه میکنه. اینجا فرقی بین اینها هست. در پایان این داستان با چنین سید خارق ماهی در حالی که فکر میکنید پتروس باید بگه من نمیتونم صبر کنم، باید هرچه چه زودتر این ماهی ها رو به بازار برسونم، میبینیم که پتروس تمام اون ماهی ها رو فراموش میکنه و همه چی رو رها میکنه و به دنبال عیسی راه میفته. در متا نوزده دقیقا این رو میگه. دنبال من بیا و من تو را سیاد انسان ها خواهم کرد دنبال من بیا سهم شماست من شما را خواهم ساخت سهم منه دنبال من بیا به شما مربوطه و من شما را سیاد خواهم ساخت به من مربوط است این یک پیمان بود در پایان داستان می بینید که پتروس برای مسیح زندگی می کنه. این سه ومین ست از روابط ما با او هست پتروس همه چیز رو به خاطر مسیح رها میکنه و او رو پیروی میکنه. ها میگن اگر پتروس سعی میکرد قایق پر از ماهی رو با خودش بکشه و دنبال مسیح بره، احتمالا نمیتونست خیلی از اون محل دور بشه. اما پتروس این کارو نکرد. پتروس همه چی رو رها کرد. همه چی رو پشت سر گذاشت و دنبال عیسی رفت. به طور خلاصه وقتی موضوع انجیل لغا رو درک کنید، چیزی که واقعا میبینید اینه که عیسی پتروس رو به کار میگیره. تا با او در انجام بیانیه ناصره همراه بشه. باید یک سری سوالهای شخصی در مورد رابطه شما با مسیح اضافه کنم. آیا شما در سفر ایمانیتون طوری زندگی می کنید که سطح ایمان شما بتونه با عنوان با مسیح توصیف بشه؟ آیا شما مسیح را به خاطر قایق پر از ماهی پیروی می کنید یا به سطح بعدی ایمان رسیدید؟ آیا در مسیح زندگی می کنید؟ آیا مسیح شما را وارد نقشه هاش کرده یا هنوز سعی می کنید مسیح رو وارد نقشه های خودتون بکنید و بالاخره به جای اینکه از مسیح بپرسید برای شما چیکار خواهد کرد آیا برای مسیح زندگی میکنید آیا میپرسید که شما چیکار میتونید برای مسیح بکنید این سوالی در خور تأمل هست. وقتی باب پونزده انجیل لوقا رو میخونیم یکی از مهمترین های عیسی رو اونجا میبینید حقیقت کلی در این مسل همون چیزی هست که در لوقا 5 دیدیم عیسی سعی می کنه مردم رو جذب کنه تا با او در اجرای ماموریتش همکاری کنند. در لوقا باب 14 عیسی موعظه عظیمی می کنه. در لوقا 15 دو و واکنش در مقابل موعظه قدرتمند او هست. باجگیران و گناهکاران به موعظه او پاسخ مثبت می دن و میان دور عیسی رو می گیرند و در اطراف او حلقه می زنن. اما فریسیان و علمای دین، مردان مذهبی چند قدمی قبتر می رن و دایره دیگری تشکیل میدن شما دو حلقه متحدالمرکز اینجا میبینید در اطراف عیسی حلقه نزدیک گناهکاران و باجگیران هستند و بعد حلقه بزرگتر و دورتر مردان مذهبی هستند که دورتر ایستادن و میپرسند چرا او به چنین اشخاصی توجه میکنه عیسی این مسئله عظیم رو به دایره بیرونی یعنی مردان مذهبی تعلیم میده عیسی به اونها شرح میده که در دایره درونی چی میگذره؟ و ایسا اونا را هم دعوت میکنه که به دایره درونی بیان و با او در انجام کارهایی که در این دایره صورت خواهد گرفت مشارکت کنن. تمام این تمثیلها مثالهای چیزهای گم شده عیسی مثالهاش را رو اینطور شروع میکنه. فرض کنید یکی از شما صد گوسفند داشته باشه و یکی از اونها رو گم کنه. آیا 99 تای دیگر رو در چراگاه رها نمیکنه و به دنبال اون گم شده نمیره تا اون رو پیدا کنه؟ و وقتی اون رو پیدا کرد با خوشحالی اون رو به دوش میگیره و به خونه میاره و همه دوستان و همسایه ها رو جمع میکنه و میگه با من شادی کنید گوسفند گم شده خود رو پیدا کردم بدانید که به همان طریق برای یک گناهکار که توبه میکند، در آسمان بیشتر شادی و سرور خواهد بود تا برای 99 شخص پرهیزکار که نیازی به توبه ندارند عیسا به کسانی که در دایره بیرونی هستن میگه به دایره درونی نگاه کنید تمام کسانی که میبینید باجگیر و گناهکار هستند دزدان و کلاهبرداران اما بذارید بگم خدا چی میبینه. خدا اینها رو به عنوان گوسفندان گمشده میبینه. هر بار که یک گوسفند گمشده پیدا میشه در آسمان جشن و سرور برپا میشه عیسی دایره بیرونی رو اینطوری به چالش میکشه. وقتی این گوسفندان پیدا میشن چرا شما شادی نمیکنی؟ بعد عیسی داستان سکه گمشده رو میگه او میگه زنی ده سکه داشت و یکی رو گم کرد او چراغ و جاروی گرفت و تمام خانه رو جارو کرد تا سکه گم شده رو پیدا کرد وقتی او سکه رو پیدا کرد به دوستانش گفت با من شادی کنی سکه گم شده ام رو پیدا کردم احتمالات زیادی در مورد تفسیرهای این تمثیل هست یکی از کاربورت که سالها پیش از یک پیرمرد شنیدم این بود در اون ایام رسم بر این بوده که برای نشان نام زدی یک زنجیری بود که زنان به پیشانی می و ده سکه از آن بر روی پیشانی زن آویزان می شد. این ده سکه نشانگر وفاداری و صداقت زن بود. اگر او به شوهرش وفادار نبود، یکی از راههایی که او می دونست که زنش به او وفادار نیست، جدا شدن یکی از اون سکه ها بود. اگر او شب به خانه می و سکه ها رو میشمرد و می دید که فقط نه تا از اونها هست، می فهمید که اشکالی وجود داره. حالا اگر این تصویر درستی از این تمثیل باشه میتونید تجسم کنید این زن با چه شور و التهابی باید دنبال سکه ای که تصادفاً گم شده بود میگشت تا وقتی شوهرش به خانه برمیگرده اون سکه سر جاش باشه اگر واقعاً این چیزی که تمثیل به ما میگه این تصویری از کسانیه که گم شده‌اند چون نمیتونن زندگی مقدسی داشته باشن. به لحاظ الهیاتی اونها حمایت میشن اما تقدیس نمیشن اونها گوسفندان گم شده نیستند بلکه به نظر میرسه که نمیتونن بر گناه در زندگی هاشون غلبه کنن. اونها آزاد نیستن. شاید ایسا خطاب به دایره بیرونی می گفت که بعضی از مردم در دایره درونی نجات یافته هستند، اما قادر نیستن که زندگی مقدسی داشته باشن. اونها واقعا برای نجات نزد او نمیان. اونها برای تقدیس شدن نزد عیسی میان. نظر این بود که زنی صاحب سکه ها بود و اون گم شده بود و بعد دوباره پیدا شد. این تصویری از کلمه بازخرید هست که در کتاب روت دیدیم. وقتی جوونتر بودم روزی منتظر اتوبوس بودم و هوا خیلی خیلی سرد بود. حدود پنج کیلومتری از خانه دور بودم. یک سکه داشتم که باید به اتوبوس می‌دادم تا سوار بشم. اما سکه از دستم افتاد. اون قل خورد و به درون حفره فاضلا افتاد که با شبکه‌های فلزی پوشانده شده بود. اون در فاصله 50 سانتی‌متری از من بود، اما من به اون دسترسی نداشتم. حسابی از کوره در رفته بودم. پیرمردی که همراه من بود و منتظر بود یک چتر داشت. او آدامسی رو که در دهان داشت به نکه چتر چسبوند و چتر رو از لای اون شبکه به پایین فرستاد و آدامس به سکه چسبید اون رو بیرون کشید و سکه رو به من پس داد. بهتون میگم که اون سکه برای من دو برابر ارزش پیدا کرد. چون اون رو گم کردم و دوباره به دستش آوردم. این لب به بازخرید هست. و این سکه که گم شده بود و دوباره پیدا شد تصویری از بازخرید هست عیسی آشکارا به دایره بیرونی میگه اینها افراد گم شده هستند، اما پیدا شدهاند و تمامی فرشتگان در آسمان شادی میکنند. چرا شما شادی نمیکنی؟ بعد عیسی گفت مردی دو پسر داشت پسر جوانتر نزد او آمد و گفت سهم مرا از میراسم به من بده چون میخوام به کشوری دور دست برم و همه داراییم رو خرج کنم این داستان برای خیلی هاتون آشنا هست داستان پسر گم شده این متن داستان بود عیسی سعی میکنه به دایره بیرونی بگه که در دایره درونی چی میگذره چیزی که عیسی میگه اینه برخی از مردم مثل پسران گم شده هستند و دوباره به خانه برمیگردند تمامی فرشتگان در آسمان شادی میکنند چرا شما شادی نمیکنید وقتی پسر گم شده به خانه برمیگرده بعضی از واعظین اذهان خاصی برای جنببندی کلام خدا دارند وقتی در دانشگاه به شما تعلیم داده میشه که چطور موعظه بنویسید به شما گفته میشه که باید سه نکته رو در نظر بگیرید و از هر کدام از این نکات سه نکته دیگه منشعب میشن و بعد از اون نتیجه گیری هست اونا به شما یاد میدن که چطور این کار رو بکنید از شما خواسته میشه که موعظه واعظین بزرگ رو بخونید یکی از واعظین موعظه پسر گمشده رو به این صورت مطرح کرده بود اولین نکته دیوانگی او بود. این زمانی بود که پسر اسرافکار خانه رو ترک کرد. دومین نکته غمگینی او بود. این زمانی بود که پسر گم شده در کشوری دور بود. نکته سوم شادی او بود. این زمانی بود که پسر گم شده به خانه برگشت. نتیجه گیری او این بود. بسوز و بساست یا برگرد. این طرح زیبا و کامل با فن خطابه‌ای عالی از یک بود. به طور خلاصه این داستانی از پسری اسرافکار هست که فرمی از شخص گم شده در دایره درونی رو نشون میده. با مطرح کردن اون داستان آشنا در این متن عیسی به دایره بیرونی میگه تنها چیزی که شما میبینید افرادی گناهکار هستند. اما بذارید بگم خدا چی میبینه. خدا کسانی رو میبینه که مثل اون گوسفندان گم شده هستند. اونها دست راستشون رو از دست چپشون تشخیص نمیدن. اما اونها نجات یافتند و تمام آسمان برای اونها شادی میکنه چرا شما شادی نمیکنید خدا مردم گمشده را مثل اون سکه میبینه و اونها رو بازخرید میکنه خدا اونها را از گم شدگی نجات میده خدا مردمی رو که شاید مثل خوک به نظر برسند و بوی خوک میدند رو هم میبینه اما اونها خوک نیستن. فقط چون در خوکدانی این دنیا زندگی کردند مثل خوک به نظر میرسند اونها پسران هستند و از خوکدانی دنیا برمیگردند. باز هم تمام آسمان شادی میکنه چرا شما شادی نمی کنی؟ من معتقدم که نکته اصلی در مسئله چیزهای گم شده در لغا 15 اینه. وقتی پسر گم شده برمیگرده، جشنی از این برپا میشه. اونجا رقص و پایکوبی برقرار میشه. گوساله ای پروازی میشه. برادر بزرگتر پسر گم شده از کار برمیگرده. او هر روزه همواره و تمام روز رو به سختی کار میکرده. از یکی از خادمین میپرسه این جشن و سرور برای چی هست؟ خادم میگه برادر شما به خانه برگشته و پدرتون گوساله ای پرواری براش کشته و اونقدر شاده که نمیتونه تونه جلوی خودش رو بگیره. بعد می بینیم که برادر بزرگتر عصبانی میشه و وارد مجلس نمیشه و در جشن و سرور شرکت نمیکنه اما پدر که به شکل پیرمردی به تصویر کشیده شده، که به طرف پسر گم شدهش میدوئه و او رو در آغوش میگیره، او پسر بزرگتر رو هم دوست داره. پدر بیرون میاد و از پسر بزرگتر درخواست میکنه که به داخل بیاد. به او میگه پسرم تو همیشه با منی، به من وفاداری و هر چیزی که دارم مال توه اما برادرت گم شده بود. چرا اینو درک نمی کنی؟ حالا او پیدا شده. او مرده بوده و حالا زنده شده. چرا نمیای تو و در این جشن شرکت نمی کنی؟ این مثالی از چیزی هست که در حین تعلیم چیزهای گم شده در دایره بیرونی اتفاق میافتاد. دایره بیرونی تصویری از برادر بزرگتر هست فریسیان و علمای دینی برادران بزرگتر بودند. گناهکاران نجات یافته بودند و تمام آسمان شادی میکرد. اونها عصبانی بودند و داخل نمیشدند و در شادی دایره درونی شرکت نمیکردند. اما نکته کلی در مسئله چیزهای گم شده در لوقا 15 اینه. وقتی می‌بینید که پدر بیرون میاد و از پزر بزرگتر درخواست میکنه که وارد خانه بشه و در اون جشن شرکت بکنه. تصویری از چیزی رو میبینید که در حین تعلیم عیسی اتفاق افتاد. وقتی عیسی در مرکز دایره ایستاده بود و باجگیران و گناهکاران دور او رو احاطه کرده بودند، از مردان مذهبی و علمای دینی دعوت میکنه که بیان و در نجات جانهای گم شده مشارکت کاربرد حقیقی و شخصی این تمثیل زیبا در لوقا پونزده اینه که عیسی از من و شما هم دعوت میکنه که با او در اجرای بیانیه ناصره مشارکت کنیم. لوقا به ما میگه مسیح ماموریتی داشت. او گفت من اومدم تا به فقیران بشارت بدم. به کوران و به اسیران و شکستگان و کوبیدگان این دنیا. وقتی انجیل رو به فقیران موعظه کنم، کوران خواهند دید، اسیران آزاد خواهند شد و کوبیدگان و شکستگان شفا خواهند یافت. وقتی او پتروس رو دعوت میکنه تا به او بپیونده به, به او میگه پتروس انسان ها رو سید کن با من در اجرای این ماموریت همراه باش وقتی به لغا 15 میدید همون حقیقت رو میبینید که به روشی زیبا اظهار شده چیزی که عیسی در مسئله چیزهای گم شده میگه پیغامی از دایره درونی به دایره بیرونی هست در دایره درونی بیانیه ناصره در حال اجرا هست دعوت از کسانی هست که در دایره بیرونی هستند لطفاً بیایید و در چیزی که در دایره درونی جریان داره شرکت کنید عیسی معموریتش رو در لغا چهار اعلام کرد در باب پنج ثابت کرد و در سرتاسر سر انجیل لغا اون رو اجرا کرد اما در باب 15 چالش این هست آیا در اجرای این ماموریت با من همراهی خواهید کرد این بدان معناست که وقتی فردا شما از منزل خارج میشید و با کسانی در زندگیتون برخورد می کنید که لحاظ روحانی کور، اسید، کوبیده و شکست دل هستند آیا متوجهید که مسیح درون شما میخواد که با او مشارکت کنید، مسیحیت تماشای یک ورزش نیست. عیسی مسیح از شما میخواد با او در اجرای مأموریتش مشارکت کنید. وقتی یک رویداد ورزشی بزرگ را تماشا می مثل بازی های المپیک چیزی که اتفاق میافته اینه صد هزار نفر یا بیشتر، که شدیدن نیازمند ورزش هستند استراحت می کنند و کسانی که شدیداً نیازمند استراحت هستند به سختی ورزش می می‌کنند این روش متداول در بسیاری از کلیساهاست اما اگر ما واقعیت و موضوع اصلی انجیل لغا رو درک بکنیم نباید اینطور باشه موضوع و درون مایه انجیل لوقا با بیانیه مسیح شروع میشه ملاحظه کنید که این چالش بزرگ بارها و بارها تکرار شده آیا با من همراه خواهید شد؟ آیا با من در اجرای جای هم همکاری خواهید کرد؟ خیلی ها توی این دنیا هستند که دست چپشون را از راستشون تشخیص نمیدن. آیا کانالی خواهید شد که توسط اون این کوران بتونند ببینند کسان زیادی در این دنیا اسیر گناهانشون هستند و آزاد نیستند. آیا میخواید بنشینید و اونها رو تماشا کنید که زائد و محمل در بستگیهاشون بمونن؟ یا کاری خواهید کرد که اونها آزاد بشن لازم برای تمامی شکست دلان و کوبیدگان شفا بشید آیا می راهی بشید که توسط اون این افراد شفا پیدا کنند؟ عیسی از شما دعوت میکنه که بخشی از راه های او برای نیازهای بشریت باشید امروز به او بگید بله